نمی توانستم بخوابم. خوابم می شدم یکی از آن شیشای آبی اتر را که خوب می شناختم از داروخانه چی بگیرم ولی به موقع جلوی خودم را گرفتم وقت جا زدن نبود باید تمام حشیاریم را حفظ می کردم. در این شبهای بیخوابی بیشترین افسوسی که می به خاطر جا گذاشتن توی اتاق خیابان واورت بود در این محله کتاب زیادی وجود نداشت. سمت میدان اتوال رفتم که یک کتاب فروشی پیدا کنم. از آنجا چند رمان پلیسی خریدم و کتاب کهنه دست دومی که اسمش کنجکاوم کرد شگفتی های آسمان. عجیب بود که دیگر حال و حوصله خواندن رمان پلیسی نداشتم. اما به محض باز کردن شگفتی های آسمان و دیدن عبارت خاندنی های شب روی صفحه اولش حد زدم این کتاب برایم خیلی ارزشمند خواهد بود توده های ابر، ککشان راه شیری دنیای ستاره ها صورت های فلکی شمال منطقت البروج سیاره های دوردست به تدریج که فصله ها را می و جلو می رفتم دیگر نمیفهمیدم چرا روی تخت اتاقم دراز کشیدم. فراموش می‌کردم کجایم، در کدام کشور، کدام شهر، چون دیگر برایم اهمیت نداشت. بدون هیچ دارویی، نه اتر، نه مورفین و نه تریاک، هیچ کدام توانستند آن آرامشی را که ذره ذره در رگ و پیم به وجود بیاورند. فقط کافی بود ورق بزنم. از مدت پیش باید کسی مطالعه خاندنی های شب را به من توصیه می کرد. این مطالعه می توانست شبهای آشفت و زچ کشیدن های را دور کند راه شیری دنیای نجوم بالاخره افق تا بی‌نهایت به رویم باز می‌شد. دیدن این همه ستاره متغیر موقت خاموش شده یا محو شده از فاصله دور یا حتی تصورشان لذت بی اندازهی برایم داشت در این بیکرانی هیچ چیز نبودم ولی حالا دیگر می توانستم نفس بکشم یعنی تأثیران مطالعه بود؟ شبها وقتی توی محله قدم می زدم حس می کردم دیگر هیچ کمبودی ندارم دیگر دل در کار نبود خودم را از لاکی بیرون کشیده بودم که داشت خفم می کرد. پایم دیگر درد نمی کرد. پانسمان باز شده و از بالای کفشم آویزان بود، زخمم داشت خوب می ظاهر محله نسبت به موقعی که تازه آمده بودم آنجا تغییر کرده بود، چند شب آسمان قدر صاف بود که به عمرم درخشش آن همه ستاره را ندیده بودم، شاید هم تو آن موقع توجه نکرده بودم، بعد از خواندن شگفتی های آسمان، چشمهایم باز شده بودند. بیشتر وقتها ناخودآگاه کشیده میشدم سمت میدانگاه ترکت رو. دستکم آنجا میشد از هوای دریا تنفس کرد. حالا میدیدم خیابان‌های بزرگی از این منطقه می‌گذرند که میشود از طرف رود سن به وسیله باغ راه های متواری و گذرگاه‌هایی که شبیه جاده های یه هستند به آنها رسید. نور لامپ ها خیره کننده تر شده بود. از اینکه هیچ ماشینی کنار پیاده روها نمی تعجب کرده بودم. بله، همه خیابان ها خالی بودند و پیدا کردن فیات سبز چمنی از راه دور کار سختی نبود. شاید از چند شب پیش راننده ها اجازه نداشتند آن حوالی پارک کنند و قرار شده بود از آن به بعد آن محله منطقه آبی باشد. تنها عابر پیاده من بودم آیا قانون من عبور و مرور برقرار شده بود و مردم حق نداشتند بعد از ساعت یازده بیرون بیایند؟ برایم مهم نبود چون توی جیب کتم مجوزی داشتم که از بازرسی های پلیس معافم میکرد یک شب سگی از آلما تا میدان ترکت رو, رو دنبالم آمد رنگ سیاه و نژادش شبیه همان سگی بود که دوران بچگیم زیر ماشین رفت. داشتم از پیاد روی دست راست خیابان بالا می رفتم. اولش حدوداً در ده متری پشت سرم راه می اومد. بعد کم کم نزدیک تر شد. به نرده های پارک گلی را که رسیدیم کنار هم راه می رفتیم. یادم نیست کجا خانده بودم. شاید در یکی از پانوشت های شگفتی های آسمان، کنسان می تواند در بعضی ساعت شب به دنیای دیگری برود مثل یک آپارتمان خالی که چراغش را خاموش نکرده یا حتی کوچه ایون بست آنجا چیزهایی پیدا می کند که از مدتها پیش بی استفاده مانده اند خوشبختی نامه چتر گرید گربه سگ اسب یا هر چیزی که در طول زندگیش گم کرده باشد فکر کردم این سگ همون سگ خیابان دکتر کورزن است. یک قلاده قرمز چرمی با پلاکی کوچک به گردنش بسته شده بود. وقتی خم شدم دیدم شماره تلفنی روی پلاکش حک شده. به خاطر همین شماره بود که کسی سگ را به مرکز نگهداری حیوانات بی سرپرست نمی‌برد. توی جیب داخلی کتم هنوز گذرنامه قدیمی و باطل شدم را داشتم. در این گذرنامه تاریخ تولدم را دستکاری کرده بودم تا 21 سال بلوغ را داشته باشم و بتوانم شب گردی کنم اما چند شب بود که دیگر از بازرسی های پلیس نمیترسیدم خواندن شگفتی های آسمان واقعا روییم را بهتر کرده بود از آن به بعد با غرور به همه چیز نگاه می کردم سگ جلو افتاد اول سرش را برگردان تا ببیند دنبالش می آیم یا نه و بعد با قدمهایی منظم به راه رفتنش ادامه داد از حضورم مطمئن بود آرام آرام و با آهنگش راه می رفتم. هیچ صدایی سکوت را نمی شکست انگار چمن بین سنگ فرش ها می کرد. دیگر زمان وجود نداشت بدون شک بویر اسم همین موقعیت را گذاشته بود تکرار ابدی بنای ساختمانها، ساختمان درختها و درخشش لامپها چنان چونن ژرفهایی داشتند که قبلا هرگز ندیده بودم وقتی وارد میدانگاه ترکرو شدم سگ لحظه ای این پاون پا کرد انگار دوست داشت همانطور مستقیم برود بالاخره دنبالم آمد مدت زیادی را نشستم به تماشای باغهای پایین و استخر بزرگی که آبش را فسپورتاب می دیدم و ساختمانهای خیابان ساحلی و گرداگرد که بر فراز سن خودنمایی می کردند. یاد پدرم افتادم تصورش می کردم که آن پایین جایی توی یک اتاق یا کافهی که چیزی به بسته شدنش باقی نمانده زیر نور مهتابی نشسته و سرگرم بررسی پروندههایش است. شاید هنوز شانس پیدا کردنش را داشتم به هر حال زمان از بین رفته بود چون این سگ از عمق گذشته ها از خیابان دکتر کرسن دیدم از من دور می شود انگار بیشتر از این نمی توانست هم کند و باید به قرارش میرسید. بنابراین پا به پایش راه افتادم از کنار ساختمان موزه انسانشناسی گذشت و وارد خیابان وینوس شد تا به حال به این خیابان نیامده بودم اینکه سگ مرا دنبال خودش میکشید اتفاق سادهی نبود حس میکردم به مقصد رسیدم و به جایی برگشتم که برایم آشناست ولی پنجرها خاموش بودند در تاریکی جلو میرفتم از ترس گم کردن سگ فاسدم را کمتر کردم. دروبر من را سکوت گرفته بود. صدای پاهایم را می شنیدم. خیابان تقریباً با زاویه نوت درجه دور میزد و حدس می زدم به بوستان پاسی برسد حتماً آن ساعت از شب توتی توی قفص زردش مدام دکرار میکرد، فیات سبز چمنی، فیات سبز چمنی و صاحب کافه و دوستانش ورق بازی میکردند. بعد از پیچ خیابان، تابلو خاموشی دیدم. یک رستوران تعطیل، شاید هم مشروب فروشی. یک شنبه بود. یک مشروب فروشی با تابلو و ویترین چوبی روشن می‌توانست موقعیت بهتری در شانزلیزه یا پیگال داشته باشد و آنجا برایش محل جالبی نبود. لحظه‌ای ایستادم و سعی کردم از نوشته روی تابلو که بالای در ورودی بود سر در بیاورم پرواز شبانه بعد روبرویم چشم گرداندم که سگ را ببینم دیگر نمی دیدمش. قدمهایم را تندتر کردم بلکه پیدایش کنم نه هیچ اثری از سگ نبود دویدم و از تقاطع بلوار دلسر رد شدم لامپ تیرهای چراغ برق آنقدر پر نور بودند که چشمم را میزدند هیچ سگی وجود نداشت نه در دوردست نه در پیاده روی شیبدار بلوار نه سمت دیگر نه روبرویم که ایستگاه کوچک مترو بود و پلههایش تا سن پایین میرفتند نور سفید بود مثل شبهای قطب شمال باید آن سگ سیاه از دور دیده میشد ولی غیب شده بود خلهای توی وجودم احساس کردم که برایم آشنا بود ولی با مطالعه آرامش بخش شگفتی های آسمان چند روزی فراموشش کرده بودم افسوس خوردم چرا شماره تلفن روی غلادش را بر نداشتم